ما هم این هفته برون رفت و به چشمم سالی حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی مردم دیده ز لطف روخ او در رخ او عکس خود دید گمان برد که مشکن خالی میچکد شیر هنوز از لب همچون شکرش گرچه در شیوگری هر موجهش قدالی ای انگشت نمایی به کرم در همه شهر و که در کار غریبان عجبت احمالی بعد ازینم نبود شاعبه در جوهر فرد که دهان تو در این نکته خوش استدلالی مجده دادند که بر ما گذری خواهی کرد نیت خیر مگردند که مبارک فالی پوه اندوه فراغت به چه حالت بکشد آفز خسته که از نال تنش چون نالی